اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام نبینا و آله خدمت عزیزان دانشجوی خودم عرض سلام دارین روز به خیلی عرض الله که از نعمت صحت و سلامت به طور کامل برخوردار هست و الله که به لطف الهی از هر گونه گزند و بلایی هم به دور باشید ما در درس قبلمون ارز کردیم که متکلم کلام خبری خودش رو با توجه به حال مخاطب به یکی از سی شکل تنظیم میکند. اونم بر اساس ظاهر حال مخاطب یعنی از اون که از ظاهر حال مخاطب میبینه کلام خبری خودش رو میاد تقسیم میکنه به یکی از این سه شکل یک بار متکلم مخاطب خودش رو خالی و ذهن میبینه نسبت به اون مضمون کلام که میخواد بگه نزا اینجا هیچ نیازی به تأکید نمیبینه اصل کلام رو بیان میکنه و به این نوع کلام که هیچ گونه تأکیدی نداره بهش میگن کلام ابتدا یه موقع احساس میکنه که اون نسبت به اون که او میخواد بگه پیشتاوری داره ذهنش مشغول شده اسطلاحاً میگن سائل شاک متردده یه همچین آدمی طالب این هستش که مطلب رو در اینجا خوبه که کلام خبری رو که برای این میخواد بیاره محکت کنه به عدوات تأکید. و این تحکید رو هم میگن استحصانی اگه نیاره اشکالی نداره ولی بهترینه که بیاره و به این نوع کلام خبری میگن کلام طلبی اما گاهی اوقات مخاطب خودش رو منکر نسبت به مضمون کلام خودش میبینه از ظاهر رو اینطور طور برمیاد اینجا کلام خودش رو به شکل انکاری میاره یعنی با عدوات تاکید وجود عدوات تحکید وجودی. حالا این عدوات تاکید وجودی رو که میاره چندتا تا بیاره میگه بستگی داره به اینکه. مخاطب رو چقدر منکر میبینه؟ او انگارش ضعیفه این همه دوات میاره در حد دهم شدید شدیدتر این رو گفتیم نوت درصد کلام خبری این رعایت درش میشه و بهش میگن القاء اول کلام الخبری علی مقتضا ظاهر حال المخاطب یعنی آوردن کلام خبری بر اساس آن چه که اقتضای ظاهر حال مخاطب این نوت درصد هستش و ما هم داریم رعایت میکنیم اما گاه گفتیم گاه میشه که متکلم به واسطه اقرازی که داره این قاعده رو رعایت نمیکنه یعنی کلام خبری رو بر اقتضای ظاهر حال مخاطب نمیاره بلکه بر اساس حال او میاره باطن او میاره اینجا میگن خروج جل کلام خبری، کلام خبری خارج شده از مقتضای ظاهر حال از مقتضای ظاهر حال خارج شده لعقرازن لعتبارات به خاطر و ملاحظاتی که یلحظه ها المتکلم متکلم در نظر که اما رو ده درصده یعنی مثلا متکلم میبینه مخاطبش منکر نیست باید کلام ابتدایی برش بیاره ولی کلام انکاری بیاره یا میبینه منکره باید کلام انکاری برش بیاره اما کلام ابتدایی میاره به خاطر اغرازی که خودش در نظر داره این هم درس گذشته رو گفتم هم درس امروز رو گفتم ضمن اینکه فقط اغراضش باقی مونده که این اغراض رو ما برای شما بیان میکنیم. حالا این درسی که الان می‌خوایم بخونیم شما بیایید سر قواعدش قواعد درس نگاه کنید این شماره 34 در واقع درس گذشته است همون 90 درصد میگه اذا عل قل اذا علم قیل خبرو خالیان من زمانی که آورده بشه الخبر یعنی کلام خبری خالیان من توکید. خالی از تاکید خالی از بود. لخال زهن برای متکلمی که خالی و زهن و معکدن اتو به جای خالی یعنی. و آورده بشه معکد اما استحسانن معکد شده تاکیدن استحسانی هم یعنی این تحکید استحبابی معکدن استحسانن لسائل متردد شک برای سائل متردد شک معکد شده با تاکید است و معکدن یا نه کلام خبری معکد آورده شده اما وجوبن آه اونم تأکید وجوبی لن کرد برای من کرد اونم به حساب این کارش ازا الگی الخبر و ها وقتی خبر این چنین القا بشه و آورده بشه که نوت درصده کان جواب ازاز کان کل الخبر و جاریان انعلا مقتصد ظاهر مختزا از ظاهر یعنی ظاهر حال مخاطب اینجا کلام خبری جاری شده بر مختزای ظاهر حال مخاطب 90 درصد اینطور گفتیم ما ما از مخاطب نمیپرسیم که تو نسبت به اینکه من میخوام بگم شک داری خالی و ذهنی منکری چی هستی که من کلامم رو باره تو تنظیم کنم بلکه نه ما به ظاهر حالش نگاه میکنیم و کلام رو طبق اون اما نگاه کنید توی وقد یجری وقد یجری قد بر سرفیل مزاره یعنی گاه میشه ده درصد میگه وقد یجری الخبرو علا خلاف مایختزیه ظاهر خلاف مایختزیه ظاهر یعنی خلاف این درصد میشه ده درصد گاهی اوقات جرگیان پیدا میکنی کلام خبری برخلاف آنچه که ارتضا میکنه اون رو ظاهر حال مخاطب اما چرا؟ ما هر کجایی که خلاف خلاف قاعده انجام بدیم حتما نکته دوش هست میگه لعتبارات لعبراز به خاطر ملاحظات و عبراز و اعتباراتی که یه المتکلم اونها رو متکلم در نظر و من زال که ما از این اغراض مهم میشینایی که میخواییم و من ما از این اقراض مهم میشینایی که میخوایم بخونیم که تقریبا میشه بگی احساسش سه رو گفته حرف ب جیم یک ان یون خال خالزه منزلت از سائل متردد کسی که سوال تو ذهنش نیست شاک نیست سائل نیست خالی و ذهن هیچ بایستده به منو نگاه میکن خب یه همچین آدمی خالی و ذهن کلامی که ما باید برش بیاریم باید ابتدایی بیاریم اما کلام رو تلوی میاریم کلام رو با عدوات تحکید استحسانی میاریم داریم چه؟ چه این کارو می کنی؟ ازا تقدم کلام مایوشی رو الى حکم الخبر یعنی مضمون الخبر زمانی که توی کلام من چیزی باشه که اشاره داره به طور اجمالی به مضمون خبر من یه کاری کردم که اون سوال مقدر تو ذهنش بیاد اون بیچاره خالی و ذهن بود آه کلام من که قبلش گفتم احساس میکنم تو ذهن او ایجاد سوال کنه لذا من کلام طلبی میارم یعنی دفع دخل مقدر میکنم یعنی جواب سوال مقدر رو میدم نه جواب سوالی که تو ذهنش هست نسبت به کلامم ظاهرش باشه نه جواب سوال مقدر که این جور جاها بهترینه که کلام با عدوات تکید استحسانی بیاد، دشم میگن استیناف بیانی یعنی جواب سوال مقدر. حالا یه مثال بزنیم که شما بیاد. حضرت نوح نهصد و پنجاه سال مردم رو دعوت کرد خب پنجاه نفر گرویدن بعد نوح معیوز شد از اینها گفت خدایا این کفار رو اینا آدم بشنیستن ازشون مؤمن هم در نمیاد اینها رو نابود کن درست خ اگر این رو ولشون بکنی همین پنج نفرم از دست ما درد میارن اینطور گفت خداوند خب نسبت به اینکه گوش کنید نسبت به اینکه خدا میخواد مردم رو هزاب کنه به درخ کردن خاد اون رو کنه به طوفان نوح نه میخوااد اون کنه درکن هیچی تو ذهن موسی نبود هیچ. اصلا نمیدونست تو ذهنش چیزی نبود که بخواد شو که اونها رو خدا میخواد به عذاب قرق کردن قرق کنه هیچی تو ذهنش فقط گفت خدا یا اینها آدم بشه نیستن قد ها رو نفلش میکن خدا برگشت به موسا این طور خطاب کرد که ولا تو خاطب نی مثال اول هم سله ولا تو خاطب نی فلزین زلم گفت موسا مبادا بیای با من پا صحبت کنی در مورد این ظالم ها, ها یعنی مبادا بیای پادرمیونی کنی یا موسی گفت اینا آدم بشی نیستن خدا هم گفت موسی دیگه نبینم بیای برای اینها پادرمیونی کنی نه برای اینها شفاعت کنی ها. از این کلام چی در میاد از این درمیاد که خدا میخواد پوست اینا رو بکنه میخواد اینا رو بگو عذاب کنه چون گفته موسی مبادا در مورد اینا با من دیگه حرف بزنی یا بیای پادر میونی کنی یا گفته دیگه خب این به طور اجمالی به طور مبهم میگه خدا میخواد اینا رو عذاب کنه خب سوالی که تو ذهن موسی از این ایجاد میشه چیه اینکه خدایا می‌خاش کارشون کنی، آتیششون بزنی، کوه رو سرشون خراب کنی، زمین دهن باز کنه برن تو، طوفان بشه، یا کنی؟ تو چه نوع عذاب خدایا می‌خواد اینا، کارشون بود؟ این سوال تو ذهنش چاکر. جواب سوال ما این سوالو ما تو ذهنش انداختیم با این کلام خدا در ذهن و دا، با این کلام که ولا و خاطر میفلتد. ولی اون نسبت به غرق شدن چیزی تو ذهنشان. لذا خداوند بعدش میگه این و زیرا اینها همهشون غرق خواهند شد اینا رو همه رو غرق میکنند ببین این و رو میتونست بگه هم مغرقون بله ولی این مغرقون هم خیلی فسیه خیلی بجاتره جاده درست شد؟ چون کلام قبلی ولا تخاطبنی خاطبی و داره. به لذین ظلمون اشعار داره به حکم خبر اشاره داره به حکم به مضمون خبر که عذاب کردنه اما بیان نمیکنه چه نوع عذابی این ایجاد سوال میکنه ایجاد چیه؟ سوال میکنه ما این سوال رو ایجاد کردیم نگاه کنید تو قاعده چی گفت. گفتش که انیون از زلخال ذهن منزلت از سایل خالی از اینجا نوح بود نازل به منزله کسی شد که سوال دور در جایگاه سایل نشست که اذا تقدم کلام، موقع که در سخن آمده از چیزی که ما تقدم کلام ما چیزی که یوشیر رو حکم الخبر چیزی که اشاره داره به حکم خبر اون توخات ابنیف لزین از علمو به طور اجمالی اشاره داره به این که حکم خبر که قرد شدنه اشاره اجمالی داره به اون که میخواد خدا عذاب کنه اما اشاره تفصیلی نداره که عذابش چیه کاملا بیان نکرده وی گفته از این که خدا گفته موادو بیای پادر میونی کنی اون متوجه میشه که خدا میخواد این رو عذاب کنه سوال تو ذهنش پیدا میشه خود چیه حسابی؟ کدون از آب خدا بکنی؟ این رو داره جواب میده نه هم مغرق. یه مثال دیگه بزنم چون این این آیه رو بنویسید خدا به پیامبر میگه خوز خوز یعنی بگیر خوز من اموالهم صدقتن صدقه یعنی زکا به پیغمبر میگه خذ من انوالهم صدقتن پیغمبر از انوال این مردم صدقه رو بگیر یعنی صدقه واجبه اینها باید بیارن بدن تو هم بگیر صدقه رو از اینها دریافت کن بعد میگه تو تحهر هم به ها و تو زکیه این تو تحهر هم به ها و تو زکیه صفت صدقه است صدقهی ای که اینها رو تطهیر میکنه تسکیه میکنه به اینها رشد و نمو میده آ بگیر یعنی صدقه ای که اینها رو بالا میبره به مالشون رشد میده یعنی اون زکات اون رو از اینها بگیر قضمن انوال هم صدقت بعد میگه وصل علیهم این جاست وصل علیهم بساد وصل علیهم یعنی چی وصل علیهم یعنی و درود بفرست بر اینها خب. دست درد نکنه بگوه این. این کلام پیغمبر گرامی اسلام نسبت به کلام بعدی که میخواد بیاد خالی و ذهنه چیزی تو ذهنش نیست نسبت بوده. ولی این کلام ایجاد سوال میکنه و سلده علیه. یعنی به پیغمبر میگه دست درد نکنم بهشون بگو میگه از اموال زکات رو از اینا بگیر زکاتی که اینها رو تطهیر میکنه بعد میگه که زکاتو که از اینها گرفتی زکاتو مالشون تو یه دست نکن تطهیر که میکنه اینها رو تو یه دست ند نکن و دعا در حق اینها بکن خب این سوال پیدا میشه خب اگه واجبه بدن دیگه ما چرا دست ند نکن بگیم چرا دعا کنیم پشتش میگه این سلا سکنون لحوم زیرا دست درد نکن گفتن تو دعا کردن تو در حق اینها آرامش هست برای اینها اسباب دلگرمیش میشه چون اگه دست درد نکن بهشون بگی اسباب آرامش اینها دلگرمی اینها میشه اینکه این که دعای پیغمبر اسباب دلگرم کردن اینها میشه پیغمبر چیزی تو ذهنش نبود اصلا نمیدونست. ولی وصل علیهم ایجاد این سؤال کرد که اگه واجبه بدن چرا ما دعا کنیم چرا دست در نکن بگیم جواب داد خوز من اموالهم صدفتن تو تحرهم بها و تو و سل علیهم بعد میگه این نسلات کسکنون دا دو دو. مثال دوم کتابو نگاه کنید. قوله تعالی این تو صور یوسف بعضی‌ها قائلند بعضی‌ها قائلند این کلام حضرت یوسف 90 درصد مفسرین بعض اون قائلن کلام اون زن عزیز زلیخا زلیخاست حالا ما که بگیم کلام حضرت یوسف بعد از این که معلوم شد حضرت یوسف بی و زنان شهادت دادن و خود زلیخا هم اعتراف کرد که این هیچکاره بوده من گناهکارم بعد از این حضرت یوسف گفت و ما او نفسی، و ما او نفسی. ما او بر یعنی الان من تبرئه نمیکنم. الان که همه چی مشخص شد، من تبرئه نمیکنم خودمو نفسم. من نمیگم نفس ما، نفس اماره ما بیسته. من نمیگم من فرشته. ما او نفسی. الان شما مردمی که اونجا وایستده بودن نسبت به این که نفس هم ماره خیلی بده چیزی تو ذهنشون بود مردم اونجا وایستده بودن اصلا چیزی تو ذهنشون در مورد نفس هم ماره نبود اصلا بحث نفس هم ماره ای نبود و بد بودن اون چیزی نبود اصلا چیزی تو ذهنشون نبود که بخوان داوری کنن درست؟ بعد وقتی که حضرت یوسف گفت من نمیگم نفس من پاکه پاک پاکه. نفس من فرشته است من اینو نمیگم من تبرعی نمیکنم نفس خودم همین تو ذهنشون اومد مگر نفس چه کار است که این میگه من تبرعش نمیکنم مگر چی شیه چیزی که من بیان بگم آقا من که داداش خودم رو تبرع نمیکنم شما اصلا چیزی در مورد این که داداش من ممکنه خطا کرده شو تو ذهنتون نباشه من وقتی گفتم بابا من که نمیگم داداش من فرشته است من که داداش خودم همتون تو ذهنتون پیدا مشون مگر داداشش چه احتمال مشکلی داره اینم یعنی هم میگه من نفس خودم رو تبرهی نمیکنم اصلاً از حضرت یوسفی میگن مگه نفس چه مشکلی داره چرا رو تبرهش میگه امنا نفسه لعماراتون به سور. زیرا نفس انسان چون نفس انسان لعمارتون عمار سیغه آمره سیغه مبالغه عماره مبالغه در مبالغه است زیرا نفسه هم بسیار عمر کنند است به سوب به هر گونه کار بدی نفسه هم فقط انسان رو به طرف کارهای بد میبره من چرا این رو کنم من نفسه هم ماره رو تبرهه هم هم دارن منم دارم در این که نفس هم بده اونایی چی تو ذهنشون نبود وقتی یوسف گفت من نفسم رو تبرهه نمیکنم اونایی این سؤال به مگه نفس هم مگه نفس چه مشکلی داره که تبرهش نمی نفس متهم قابل تبرهه نیست همیشه عماره به سوه اینم نفسه لعنمارتون به سوه النفس الفلام داره سوه هم الفلام داره الفلام داره. جنسه یعنی هر نفس عمارهی در هر کسی هست فقط و فقط گرایش صد درصدش به سوه به هر نوع بدیه اصلا طرف خوبی نمیره نفسم اما تون این نداره لام داره جمله اسمی هم از عدوات تأکیدش زیاده ولی اینا مستحبیه یه دونش هم کفایت میکنه حالا دوتا آورده تا آورده آم بگه این مطلب مهمه چیزی تو ذهن اون مردمی که تو اون تالار جمع شده بودن و بیگناهی یوسف رو دیدند اعتراف اون زنال رو دیدن اصلا چیزی تو ذهنشون در مورد نفس اماره نبود وقتی یوسف گفت ما او بر و نفسی ذهن اونا مشغول شد که خب نفس مگه چه مشکلی داره که تبرئه نمیشه جواب داد که ان النفس الاماره تون زیرا نفس اماره به سوه اهم کننده اونم بسیار اهم کننده بسود. حالا این مورد اول دیدیم یه دونه من مثال زدم خوز من اموالهم صدقتن بازم مثال خویم صدقتن نگاه کنید بحث رو. عرف نافل باب سابقه اندل مخاطبه در گذشته در دیدم که اندل مخاطبه امکان خالی از ذهن اگر مخاطب خالی از ذهن باشه اون غیه علیه الخبر و غیر محکده خبر ورش میاد بدون تک و امکان مترد دادن مضمون الخبر و اگه متردد سائل شاک باشه در مضمون خبر طالبن معرفته و میخواد هم در موقع که سائل شاک متردده واقعیت رو بفهمه این حسونه یعنی است مستحبه که تاکید کنیم خبر براش و این کانه منکرن اگر منکره وجبه ات توکید. واجبه وجبه ات اونم به حساب انکارش در شدت و زم و الغاول کلام علا حازن یعنی حازل اسلوب و آوردن کلام بر این سبک خوبه ما یختزیه ظاهر چیزی که اقتضای ظاهر حال مخاطب. و قد برسار فیلمزاره یعنی گاه ده درصد و قد تو جد اعتباراتون و گاهی پیدا میشه ملاحظاتی که تدعو او الان مخالفت حازز ظاهر که وادار میکنه ما رو به اینکه مخالفت کنیم با این ظاهر این ظاهر رو قبول ندارم نشه و حافیمایت شرحش میدیم تو این موارد که میبینیم یک اون زلیلن مثال الوله نگاه کن به مثال اول تجدر مخاطب یعنی نو میبینی که نو تجدر مخاطبه تجدر مخاطبه خالی از زه. مخاطب رو میبینی که خالی از زه. منر حکم نسبت به حکم خاص یعنی قرح شده به ظالمین نسبت به حکم خاصی که نسبت به این ظالمین هست، غرق شدن چیزی تو ذهن نوح نبود. و کان مختز از ظاهر اله ازا انیل قائل ای الخبر و غیر موکد. اختزامی کرد که خبر رو خداوند براش بیاره که من اینا رو می‌خوام غرق کنم، چون چیزی تو ذهن نوح نبود. بگه من مخوام اینا رو غرقش میکنم بدون ادوات تاریخ ولاکن لا آیه الشریفه تجاهت به توکید ولی آیه شریفه با این نموده تاکید داره ان لهم مغرقه فما سبب خروج آن مختص ظاهر چرا از مختصای ظاهر که ظاهر نوح خالی و ذهن عدول شده میگه از سبب الله سبحانه او علتینه که وقتی خدای تعالی لمما نها نوحا مخاطبت هی فی مخالفی وقتی که خدا نه کرد نوح را از اینکه پادرمیونی کنه حرف بزنه در رابطه با مخالفین خودش گفت دیگه نیا پادرمیونی کنی یا این دفع او این نهی خداوند وادار کرد نوح را ال تطلل به اینکه اشتیاق پیدا کنه الا ما سیوسی که که خدایا میخواد تنبیهش کنه فهمیدم میخواد اینا رو عذاب کنه چیکارشون میخواد سوال تو ذهنش پیدا شد که چه کارشون بخواد بکنه فنوز زلل زالکه منزلت از سائل متردد به خاطر همین شد نازر به منزل سائل متردد شاک سوالی که تو زهنش این بود احکم علیه هم به املا آیا حکم غرق میخواد به اینها بده یا چیز دیگه مخواد در زمین فرو کنه اینها رو یا کوه رو سرشون خراب کنه سیل میخواد بیاد چی مخواد بشه خدا جواب ده. اوجی و به قولهی پس جواب داده شد با قول خدا که انهم نهم مقرم. و الحال همچنین از حال در مثال دوم. و انل مخاطب خال ذهن. مخاطب خالی و ذهنه. من حکم لظی از قول هوطاله. نسبت به مضمون کلامی که قول خدای تعالی در بر گرفته ان نفس الاعما اینکه نفس آدم رو به طرف سوء میبره بدی میبره نفس و دم... نفس عماره دنبال بدی است چیزی تو ذهن مردمی که اونجا تو تالار ولیسادو بودن داشتن داستان یوسف عزلی خارو می دیدن و اعترافات اینها نبود چون اصلا بحث نفس عماره و اینها نبود غیر اندر لحاظ حکم لما كان مسبوقه جز اینکه این حکم این کلام وقتی که مسبوقه یعنی قبلش آمده به جملت اخرى یه جمله و وحی قول خداوند اون جمله اینه قول خدای تعالی و ما اوبر رو نفسی من نفس خودم رو تبرئه نمیکنم. این و یکی وحی تشیرا الی اندر نفس این اشاره داره به تن به اینکه انن نفسم محکومان علیه ها بشه این غیر من این که نفس چیز خوبی نیست میگه من نمیگم نفس تبره هست من نفسو پاک نمیدونم آدم به ذهنش میاد که این نفسی مشکلی داره خب مشکلش چیه؟ همین سوالی چه میشه که چه مشکلی داره که این میگه من تبراش نمی کنم من نمیگم نفسو پاکه چه مشکلی داره؟ میگه مشکلش اینه که این گرایشش به است. همینجا از به مخاطب و مستشرفند مخاطب اینجا مستشرف میشه یعنی مشتاق متطلعند خیلی خیلی دینش میخواد مستشرف چی مستشرف و متطلع به معنی مشتاقه خیلی خیلی مشتاق میشه الان نوع آزالحکم به اینکه این نوع حکمش چیه یعنی از چه جهت بده میفهمه که نفس چیز خوبی نیست سوال برایش میده این اشاره داره به اینکه که نفس چیز خوبی نیست اما نمیدونه از چه جهت همین سوال میاد. میده اینجاییه انجا که دست شاید بلند کنه سوال مقدر دیگه بگه خدایی فهمیدم که نفس خوب نیست ولی از چه جهت این سوال اونو میده به تو تفصیلی اصف حل مخاطب و مستشرفن متطلن الى نوع حاضل حکم نوع یعنی خصوص این حکم رو بیان میکنه فنزل ظلم این اجل زالک به خاطر همین مخاطبها نازل به منزله چی شدن؟ منزلت از سائل متردد طالب شاک به خاطر همین نزل ظلم مخاطب مخاطبی که خالی و ذهنه من اجل زالک منزلت از طالب متردد از شاک از خالی و ذهن ها شدن سائل متردد شاک. و طالب چرا به دلیل که کلام من ایجاد سوال کرد و اول یه خبر رو محکم کرد براش به شکل تأکیدی باز حالا نگاه کنید توی عبارات نموزج نموزج کتاب ببینید مثال یک خدای حالا داره با ما صحبت میکنه ما در اینکه که قیامت الان تو ذهن ما آه؟ الان چیزی در مورد اینکه که قیامت خیلی خیلی سخته هست ما, هست ما در قیامت فکر نمی کردیم. خدا شروع میکنه میگه یا ایها الناس ناس آی مردم اتقو ات رب بکن بپرهیزید از خداتون بترسید از خداتون آی مردم از خدا بترسید خون. این جمله اتقو ربکم ما در اینکه که قیامت سخت است و قیامت مشکله چیزی تو ذهنمون نیست. ولی از این اتقو ربکم رب میفهمیم که خدا میگه که وقتی میگه مردم بترسید از خوداتون یعنی چی یعنی خدا میخواد گوش مالی کنه. یه پل خرابه هست یه جایی هستش که به قول خودمون گوش آدمو میگیرند. اینو میفهمیم اما اینکه اون کجاست، چیه؟ کجاست که باید از خدا ترسید؟ اون جاش کدومه؟ اینو استغفر بکن بکون نمی‌فهمونید. استغفر مثلا اینکه میگیم آهای مردم حواستون باشه. خب این حواستون باشه یعنی خطری هست. همه ذهنشون حساس میشه. خودش ذهنشون حساس میشه که چه خطری. اون نوع خطر رو میخوان بفهمن اما همین دیگه من میگم آهای مردم حواستون رو جمع کنید. همین میفهمن یه چیز خطرناکی هست، یه چیزی هستش که سخته. همه میگن مگه چیه؟ اون چیه؟ یعنی نوعشونو بخوام. اون میاد تو ذهنشون سوال. لذا التق و رب بکنم همینه. بعد خدا بر میگرده میگه چی؟ این نظر زن از ساعته شیوانته. زیرا زیرا زیرا, زیرا زلزله یه روز قیامت چیز هزیم نیست شوخی بردار نیست شده. مثل که وصلا دوالا با تو قوشه میگه آی مردم خواستون رو جمع کنید همه میفهمن یه چیزی هست که خطرناکه یه چیزی هست که فهمن. بعد میگم شون دوست اومده این چون دوست اومده این چون همو انده میشه زیرا دوز اومد اونا پیچاره ها نسبت به اومدن دوست ایچی تو ذهنشون نبود خالی و ذهن بودن. اگر اولش میخواستم بگم بگم, بگم دوست اومده یه تحکید نمیکرم ولی وقتی میشه من گفتم آهای مردم حواستون رو جمع کنید همه میفهمن یه چیزی نامعقولی هست حواستشون به قول خودمون به این میفته که یه چیز خطرناکی هست. بعد میگه خب اون چیز خطرناکی چیه؟ این سوال تو ذهنشون پیش میاد. جواب میدن؟ زیرا دوزدوند. اینجا میگه یا ایهالناسو لز... اتقو رب بکن. بپرهیزید از پروردگارتون. بترسید از پروردگارتون. ان نرب بکن. این نزلزلت از ساعتشو نزی. چون زلزله روز روزقی آمد. چیز سخت. شوخی بردار نیست. شوخی بردار نیست. درست شو؟ خب این هم مالی اجابه رو ببینم براتون بخونم. میگه از ظاهر و فالمثال الاولی، اونی که ظاهر در مثال اول یق ازی میکنه ان یلقا الخبرو خالیا من التوجه. اختزام میکنه که آورده بشه خبر خالی از توطید خالی از ادبود تو لئن المخاطبه خال ذهن مرال بود زیرا مخاطب نسبت به مضمون کلام خالی و ذهن چیزی تو ذهنش نیست نسبت به اینکه زلزله در قیامت زلزله قیامت شدیده چیزی تو ذهنش ولاکن لما تقدم فعل کلام مایوش رو به نوع ولی وقتی که در کلام چیزی اومده که اشاره داره به نوع حکم یعنی نوع حکم یعنی به طور اجمالی به مضمون حکم که یه چیز خطرناک هست به این اشاره داره چون میگه بترسید از برورده هایتون یوشع به نوع حکم حص و حل مخاطب و اینجا مخاطب مشتاق میشه برای شنیدن خبر نوعش که یعنی چیه و نزل منزلت از سائل متردد پس از اینجا نازل به منزله سائل متردد میشه و از توحسنه الگاه ولی کلام علیه معکدن اینجا کلام براش آورده میشه معکد جریان علا خلاف مختزای ظاهر برخلاف مختزای ظاهر مختزای ظاهر افتضا میکرده کلام ابتدایی بیاد خالی از تحکید بود ولی آمده به شکل معکد برخلاف مختزای ظاهر درست شد؟ خوب این یک فهمیدیمش دو تا مثال سه تا مثال و چه چهار تا مثال با مو خوزمه اموال همسا وقتنی که من زدم همه همایه قرار بریم سر دوتای بعدی سه و چهار نگاه کنید به توی قواهد به میگه ان علاقه ای رول انیوج علل غیر المنکر کل کلمونکر. این که قرار داده بشه غیر منکر منکر نیست قرار داده بشه کلمونکر. مثل منکر یعنی کلام رو براش با تاکید وجوبی بیاریم دو تا سه تا انیاج علل غیر المنکر کلمنکر چرا میگیم ظاهرش اینه که منکر نیست بلکه اسم معیده لظهور امارات، امارات یعنی علامات. به خاطر ظهور علامتهای انکار بر او. امارات الانکار علی. علامات الانکار علی. چون علامت‌های انکار درش داره شده. علائم‌های انکار درش ظاهر میگهیم درست به زبانش مثلا معیده خیافش هم خالی و ذهنه ولی نشانه های انکار درش هست ما اون باطن رو میبینیم کلام طبق ظاهر این آورده نشده اگه طبق ظاهرش آورده میشد باید ابتدایی می آوردیم و خالی از ادبات تک مثالیت رو تونه براتون زدن گلتم مثل که یک نفری از در میاد تو امروز از من میفرسه که آقای بود چند شنبه است میگم دوشنبه امروز دوشنبه است کلام ابتدایی مشی نه اوه کی گفته دوشنبه است امروز دوشنبه نیست دیروز دوشنبه بود من خودم پرسیدم خودم تقویم نگاه کردم معلوم شد که امروز دوشنبه من اینجا برمیگردم بهش نمیگم که پیر به پیغمبر الله بیا بشین برای تقویم میارم تأکید میکنم یا آب فرماییده روز دوشنبست دیگه کلام رو به شکل چی میارم؟ به شکل کلامت این یک مورد نباکه اون تیکه جیم رو ببین انیاج علل منکر منکر منکر دوشنبست کدهی روز منکر غیر ممکن قرار داده شد چه امکان لدیه دلائل زمانی که باشد در نزد او دلائلی قرائن ام دلائل زیاده دلائل و شواهد دلیل های هست شاهد های هست لو تعمله ها لو تعمله یعنی اگر اونا رو یه ذره دوشون فکر بکنه نرپده عن ان امکاره دست میکشه از این بله بفرمایید امروز دوشنبه است دیگه دیگه تأکید نمی کنند. چرا چون میگم در اینکه دوشنبه امروز دوشنبه است بسیار در اینکه امروز دوشنبه است بسیار, بسیار بسیار واضحه بسیار بسیار واضحه نیازی به نیازی به دلائل و مطلب نیست لرتدان انکاره یا نه نگاه کنید علیج الا غیر المنکر مثلا کسی که منکر نیست این نه تنها مردن رو قبول داره مثل من و شما بلکه اصلا کفن هم خریده آمادم داره اینو ما حساب میکنیم منکره غیر منکره منکر رو منکر میکنیم لظهور امارات انکار علی به خاطر ظهور و روشن شدن نشانه های انکار برو میگه آن تو ظاهره دینه که منکر نیستی باطنن منکری چرا چون مداریم اماراتوش نشانه هاشو میبینیم تو سر مردم میزنی منکر مرگ در ظاهر نیستی خیلی هم قبول داری، اما از اون طرف تو سر مردم میزنی دو بازی میکنی مال مردم رو برمیداری ظلم میکنی قیامت قبوله اینا همه نشانه های انکاره حالا ولو در ظاهر تو میگی نه همه میمیرن انیاج علاقه ای رول منکر غیر منکر قرار داده شده کل منکر برایش تاکید کردی چرا چون علامات انکار ساشت اون یکی منکره غیر منکر حسابش میکنی چرا میگه ما این زمین و زمان دارن تاکید میکنن این وطلب وازه و میگن تو انکارو دوزار نمیارزه که من بخوام برایش تحکیل واسه چی بکنه؟ سه عرضش نده انیاج علال منکر که کغیر منکر امکان لدهیه دلایل و شواهد لو تعمله ها ردتدن امکاره درست شد حالا نگاه کنید سه سه جاییه که طرف منکر نیست غیر منکره ما منکر حسابش میکنیم چون علامات انکار داری افتاهایش و قالت حالا سمت این بعد ذالک زالکه لمیتون بعد از لمیتون من توضیح دادم به ما میگه. میگه شما بعد از این میمیرید بعد از این جهان هستی بعد از این حیاتی که دارید میمیرید شما مردن دارید میکن ما منکر مردن بودیم نه پا چرا اینطوری با این و لام میگه میگه شما در ظاهر منکر نیستی کفن هم خریدی معید اما اعمالت میگه منکر مرگی که که مرگ قبول داره که اینطور که تو رفتار میکنی نمی کنه این یک این چون توضیح داده بودم اما دیگه بعدی رو نگاه کنید وقال حجل بن نزله علقيسي جو حجل بن نزله قیسی یک شخصی است ببینید گوش کنید اینو از بیرون بگم که این بیتو بتونام قد قديم رزمنده روی اسب می نشست و به قول خودمون این نیزه خودش رو شمشیر خودش رو اگر روی اسب نشسته بود به طرف دشمن داشت میرفت چیکار می‌کرد نیزه رو با دست راستش می‌گرف یا شمشیر رو تو دست راستش می‌گرف بالا با دست چپشم هم دهانه اسب رو می‌گرف اینطوری میرفت طرف دشمن یعنی هیئت کسی که طرف دشمن میره اینه که رو اسب نشسته دست راستش شمشیر و نیزه است و دست چپش هم دهنه اسب میکشه و میره شد این حیعت این کسی. این قبول داره که دشمن جلوشه دشمنم مسلحه ضربه میزنه نزا این آماده میره طرف دشمن شد اما وقتی که داره میره طرف خونش یا تو لشگر خودشه خطری نداره دیگه اونطوری که نمیره که شمشیرو رو گرفته باشه بالا و دستشم به دهنه اسب اینطوری بره آماده باش نمیره چیکار میکنه؟ اصلاحه رو میخواه روی زانواش روی این رانش به شکل عرضی میذاره روی رانش سلانه با دو تا دستش دهنه اسبو میگیره سلانه سلانه میره او خب. حالا این آقای شقیق که تو این شعر داره میگه این داشته میرفته طرف پسر عموهاش پسر عموهاش هم به خونش تشنه بودن همه هم دشمن او همه هم مسلح داشته میرفته طرف پسر اینطوری این تارید. خب این باید چجوری میرفته طرف اونا؟ باید شمشیرو رو میگرفته بالا دهنه از تو دست چپش اینجوری با این طرف میرفته اما این برعکس شمشیرو رو خوابونده بود روی رونش و دهنه اصفه دو دستی گرفته و سلانه سلانه میرفته اگر از این آقا میپرسیدی پسر اموها دوست تو یا دشمنت میگفت دشمن میپرسیدی ازش اونا اصله دارن تو رو بکشن یا نه میگفت بله دستشون برسه میکشنت میگفت بله. پس چرا اینطوری داشته میرفته طرف اونا مخواسته اونا رو تحقیر کنه بگه شما آدم نیستی که من بخوام به طرف شما مسلح بیام. اینجوری میان این شاعر برمیگرده به این آقا میگه جا شقیقون میگه آقای شقیق اومد به طرف پسر امااش آرزن در حالی که به عرض گذاشته بود نیزه رو. یعنی اومد بدون آماده باش خب خود این حال حکایت میکنه که انگار اونها رو منکر اینه که مسلح باشن منکر اینه که دشمن باشن لذا برمیگرده به شقیق میگه این بنی امنکه که هم رما با این نب و جمله اسمیه میگه آقای شقیق پسر اموها دشمنتن نیزه دارن اونها ها می کشن. چرا با اینطور میگه میگه به پیر به پیغمبر پسر اموها دم اما به خونت هم تشنه چرا اینطوری میگه بدانی که رفتن او به طرف پسر اموهاش اماره و نشانه بوده برای اینکه اونها رو بگید منکر اینه که اونها اسلحه داشته. گرچه به زبان قبول داشته ولی رفتنش عملش نشون میداده که اونها رو بگید آدمای بیخطری میدونسته. بی گفت نه بابا خطرناکن اسلحه دارن، نیزه دارن، حواست باشه. قرینه این جا اشقیقون آرزن رومهو این که به عرض گذاشته خودش رو به طرف اونها میرفته این رو میفهمده جا اشقیقون آرزن رومهو این بنی هم بکفی هم روی این هست جمله اسمیه هم هست درست شد تاکید کرده به طور وجوبی اینکه به این شکل شقیق رو منکر حساب کرده نسبت به اینکه که پسر اموها دشمنشند یا اسلحه دارند و میکشنش. چرا منکر حساب کرده؟ اون که منکر نبوده می پسر می اونا به خونش دشند چون رفتنش به طرف اونها به شکلی بوده که این رو می که اونها رو دشمن نمیدونه، دارای اسلحه نمیدونه و اونها رو آدم بی میدونه بی سلاحی می میگه جا اشقیقون آرزن رمحهور این نبنیم بکه فیهم رما حالا نگاه کنید من این دوتا رو توی متن بخونم برای تو. و کزا نکل حال فیلم سال سانی. درست شد اینو خوندیم اون زن مثال سال سر. نگاه کن به مثال سر تجدل غیر منکرین الحکمه میبینی که مخاطبین که ماها باشیم هیچگونه انکاری نسبت به حکم نداریم درشتو تجد مخاطبین مخاطبین که ما هستیم الغیره ما منکر نیستیم ال الحکمه اینکه می‌میریم رو الی تزمنه قوله تعالی اون حکمی که خدای تعالی در بر گرفته که مردن باشه ثمنکم عباده ذل کلامه گفت ما که منکر مرگ نیستیم لازم مؤیدیم کفن هم فریدیم میگه فمن سبب ازند پس علت چیه که خدا این همه تأکید کرد، فی الگاه الخبر الیه محکم خبر رو برای این آورده این طور محکم از سبب ظهور و امارات الانکار علیه ایلتش اینه که نشانه های انکار بر اونها ظاهر شده از سبب ظهور و, و امارات انکار علیه چطور؟ اونزو امارات انکار چیه؟ هم عن الموت و عدم استعدادهم فإِنَّ قَفْلَتَهُمْ عن الْمَوْتِ وَعَدَمَ حَتَّى جای قفلت این قفلت اونها از مرگ و عدم استعدادهم له، و اینکه آماده نمیشن برای مرگ بل عمل صالح با کارهای خوب کار خوب نمیکنن عدم آمادگیشون نسبت به مرگ با عمل صالح این یو من علامات آنها این از نشوندهنده های اینه که اینها منکر مرگن هل با قبول که اگه قبول داشته بشه ازش قافل نمیشه از اون چیزی که میخواد بیاد و برای اون میجاد آمادگی میکنه و من عجل زالک و به خاطر همین نزلو منزلت المنکرین نازل به منزله منکر شدن و علقی الهیم الخبر رو معکدن به معکده اینه و اینجا خبر آورده معکد به دو تا عدات تک نگاه کن. و جز حال فی و همچنین از حال در قول خدای تعالی فی قول حجر ابن نزله فئن چطور میگه زیر آقای شقیق شریق لایونکر الماه بنی امیه این که پسر اموها اصله دارن اینو منکر نیست این که دشمنان منکر نیست این که اونها اگه دستشون برسه اینو میکشان منکر نیست ولکن ولی ولکن ماجیعه و آرزن رمحهو ولی این که داره میره طرف اونها میاد در حالی که به عرض گذاشته نیزه خودشو من غیر تحیع للقتال ولا و لا استعداد له بدونه که آمادگی برای جنگ داشته باشه و خودشو آماده برای جنگ کرده باشه این اومدنش دلیلون دلیل رو عدم اقتراسه دلیل بر اینه که اهمیت نمیداده به اینا اینا رو مسلح نمیدونسته ولا که نمجی اهو آرزن من غیر تحیی و این للغتال ولا استعداد له یعنی للغتال این ولا که اهو دلیل على عدم اکتراسه اکتراس یعنی احتمام اعتنام دلیل برای اینه که اعتنام و اعتمامی به اینا نداشت اینا آدم حساب نمیکنه و اینا از هشون کده و علا و دلیل است برای اینکه که علا عدم اکتراسهی و علا عطب جه قبلی و الا عنده يعتقد و دلیل برینه که این در باطن معتقد است ان بنی امیه عزل جمع از اعزله. یعنی بی سلاح دلیل بر است که پسر اموای خودشو غیر مسلح میدونه بی میدونه بی خطر میدونه لا صلاح معههم این تفسیر ازل دلیل بر اینه که معتقده پسر اموایش هستیه نداره آه؟ پس منکر اصله داشتن اونهاست در باطن نزا اومده گفته فلزالکه اون زل منزلت المنکرین و به خاطر همین نازل به منزله منکر شدن که کده الخبر خبر خبر براش تأکید شده وجودن و خوته به خطاب المنکر و مورد خطاب قرار داده شده خطاب منکرانه فقیلاله این نبنی فی هم فیهم ما برگشته و گفته این نبنی همکه فیهم رمان خب حالا نگاه کنید تو نموزش خوب. اینو من براتون اون دفعه هم گفتم یه نفری هست میدونه که نیکی به پدر و مادر واجبه آیاتش هم بلد مقاله هم اصلا نوشته خب ولی خودش بد رفتار شما برمیگردید بهش میگید ان بر الوالدین لواجب با ان و لام و جمله اسم آقا به پیر به پیغمبر حتما حتما نیکی به پدر و مادر واجب مگه اون منکر بده نه معید که بوده تازه اصلا خالی چیه پای بالاتر معید تازه آیاتش خودش حفظه پس چرا باید این نه این نه چون عملش نشون میده که منکره عملش عمل کسیه که میگه نخیر برله به بالدین واجب است تقوله لمن لایوتی اینو میگید به کسی که اطاعت والدین خودش رو بگید کن. نگاه کنید پایین مختز از ظاهر انیلغا الخبرو غیر معکده اختزای ظاهر نگه خبر بدون علامت تحکیب بیاد چرا لعن المخاطب گناه لایون کرد بلی یعیدو این زیرا مخاطب اینجا منکر که نیست یه چیز هم میکنه لایون کرد أن بر الوالدين اصلا این انکار نمیکنه که بر به به والدین نیکیه به پدر مادر واجب والله تردید و فیزا اصلا شک هم نداره بن یصد و یعیر واجب اصلا تصدیق میکنه تایید میکنه ولکن اوسیانهو ولی نافرمانیش نسبت به پدر مادر نامهربانیش نسبت به اونها ولکن اوسیانهو عمارتن من این کار نشانه بالایی از نشانه های امکار فلزالکن رو زلمنزله تلمان کرد به خاطر همین نازل به منزله ممکر شد سه رو نگاه کنید سه نموزه یه نفری هست ظلم میکنه مال مردم رو میبره قیبت میکنه عذیت میکنه همین کارها رو میکنه خدا رم قبول داره میگه خدا هم همه اعمال ما رو می بینه اللم یهلم به ان الله یاره آیا نمی بیننی که خدا آره می بینه هم بلده اما همین غلط ها هم میکنه. آیا این منکر اینه که خدا اعمال ما رو می نه ا خودش پشت تو درره این آیه قراهانه نوشته اللم یهلم به ان الله یاره واقعا نداری که خدا می بینه پس چرا داری این کارا رو میکنه آه. ظاهرش که این منکر نیست معید هست که خدا اطلاعی بر کارهای این امارات انکار داشت لذا باید با این بیایم موقعی که میگیم اینطور بش بگیم ان الله لمتلعن علی افعال العباد آقا به پیر به پیغمبر به خدا به قرآن قسم خدا اعمال بندگان خودشو میبینه ها چه رو کرد اون که امارات انکار داشته اگه امارات انکار چیه این که داره ظلم میکنه این که داره بیدار میکنه اینالله هلا مطلعان علا افعاله ببین تقوله لمن یزلمون ناسه به حق حقی کسی که داره ظلم میکنه به مردم به ناهق کلبی نداره از کسی ولی مالشو بر میداره کسی نزده تو گوشش ولی میزنه تو گوش مردم به ناهن. نگاه کن. از ظاهر و هنها یقت از یه القاول خبر غیر معکده حیزن مثل بالایی چرا لعنه المخاطبه لا یونکر و مخاطب که منکر ولا و نیست و یه تردد دوفی فیه و تردید در این هم نداره ولیکن نهو نزل منزلت المنکر ولی نازل به منزله منکر شده و الغیه علیه الخبر رو معکده و خبر براش آورده شده اینجا معکد چرا؟ لزهور امارات الانکار علاج. چون نشانه های انکار برای شد اون نشانه انکار چیه که ما دیدیم در او و گفتیم که این منکر اینه که خدا اعمال ما رو میبینه و هیه ظلمه و عبادت غیر حق این او داره ظلم میکنه به بندگان خدا بدونه اینکه حقی داشته بریم سر بعدی یعنی پنج و شیش. پنج و شیش اون مثال جیمه انیوج علال منکرو که غیر المنکر منکر به منظره غیر منکر شده که انکان لدیه دلائل و شواهد نزد منکر مخاطب اینقدر دلائل و شواهد هست لو تعمله ها اگری به فرض محال یه لحظه دقت کنه لر از دست میکشه ان این وش میخوام بگو اینقدر دلایل و شواهد هست که اگر شما یه ذره فکر بکنی، هیچ وقت بگید، هیچ وقت انکار نمیکن هیچ وقت انکار نمیکنه، لرتدن ان انکاره، لوتر عملها لرتدن ان... انکاره، یعنی اون دلایل خارجی هست، دیگه نیاز به تأکید من نیست. با این تاکید نکردن و کلام ابتدایی آوردن در واقع هم بهش بگیم که آقا تو داری واضحات را انکار میکنی نیاز به تاکید من نیست دقت کن دقت کنی خودت میفهمی خودم مثل که میاد میگه امروز جنشند هست الان نگاه و قالت حالا یو خاطب و من کری مورد خطاب قرار داده مونیکریل وحدانیت خود شما اونایی که میگفتن خدا یکی نیست مشرک بودن خدا, خدا شریک داد باید به اونها بگه به پیر به پیغمبر قسم میخوریم حتما اینطوریه انکار نکنید باور کنید خدا یکیست اما هیچ کنی نیم اله حکم اله وحد خدای شما یکیست خدا یکیست داره. اله حکم اله حد. واحد صفت اله اله حکم مبتدا. الهان خبر واحد صفت خدا یکیست یعنی یعنی در اینکه خدا یکیست اینقدر دلائلاتون شما به این نظم آلم نگاه کن بیفهمی که نازمش باید یکی باشه. شریک داشتن نقصه خدا که ناقص نیست اگه ناقص باشه که خدا نیست هر چی فکر کنی میبینی دلایل برای توهید هست هستیگه نیاز دیست که من بخوام تا. داری انکار میکنی چیزی رو که وحدانیت و خدا رو داری انکار میکن چیزی که دلائل شواهد قرائن بر او فراوان است دیگه نیاز به تک آقا بفرما خدا یکیست شیشی یا خدا یکیست شیشو نگاه کن یه نفر اومده میگه آقا اصلا آدم نفهمه خوبه نفهمی زرر نداره آدم نادان باشه ضرری نمیکنه. خریت خریگت زرری ندارد اینطوری میکنه انکار زرر داشتن جهل رو میکنه که نفهمی و جهل و خریگت زرری نداره. خود این که دیگه اگر بود زرر نداشت که این همه مردم دنبال علم نمی رفتن. این همه دنبال فهم و دانش نمی رفتن. خب همه دنبال خریگت می رفتن. این داره زرر جهل رو انکار میکنه باید برگردیم به این نادانی که زرر داره دیگه دیگه نمیگیم آقا به پیر به پیغمبر به خدا و حسن آدم نفهمه زرر داره آز... نفهمی که زرر داره دیگه نادانی که سود نداره زرر داره دیگه اینطوره. الجهل جهلو جهل و نفهمی و نادانی زرر میزنه تغور و حول من کرو زرر اینو میگید به کسی که منکر زرر جهلی میگه نه جهل و نادانی خیلی هم حالا نگاه کنید توی مطر اون سره مثال خامس نگاه کن به مثال پنجم. تر خواهی دید الله سبحانه یخاتب و منکری. ان الله سبحانه هو يخاطب المنكرين این که خدای تعالی مورد خطاب قرار داده منکرین الذين يجحدون وحدانيته اونهایی که جهاد میکردند و انکار میکردند وحدانیت خدا آمده با منکرین اونهایی که قبول نداشتند وحدانیت خودش رو مورد فتاب قرار بده. ولکن او الغایل قائل همال الخبر خالی هم کرد ولی با این منکرین خبری که آورده که خدا یکیست بدونه عدواتو آورد آورده. کمایل قال غیر منکرین همونطور که برای غیر منکرین آورده شد. فقاله بعد اینطور گفته و اله حکم اله واحد و خدای شما یکیست. فما و چوزاری. یعنی دلیل دلیلش چیه منکر رو منکر حساب نکرد میگه الوج خود یعنی دلیل. از دلیل یکی از معانی وج یعنی دلیل و از چه وجه این حرف میزنی این از چه دلیلی به چه علت الوجها ان بين ایدیها اولائه دلیلش اینه که در مقابل این جماعت منن براهین sauteعه از برهانهای های روشند بل حجج القاطعه و دلائل کارا دلائل یقیناور قاطعه از برهان روشن و دلائل یقیناور ما لو تاملوا تامل اون مقداری هست که اگر تعمل کنن لوجدو فیه نهایه نه. تردنا اگر دقت کنن نهایت قانع شدن رو پیدا میکنن بیا خودت یه ذره فکر کنی می خودت میفهمی قانع میشینن چه قانع شدنی که نیاز به هیچ چی نیست و لم يقم الله لهذل انکار وزن خدا برای انکار اینها هیچ ارزشی قایل نشد هیچ وزنی براش قائل نشد و لم به و اعتنا نکرده به انکار اینها الخطاب در موقعی که داشته خطاب رو به طرف اینها قرار میداده انکار اینها رو نه وزنی براش قایل شده نه اهمیتی بهش داده یعنی اعتنا اعتنای نکرده به انکار اینها وزنی هم براش قائل نشه چرا چون گفته انکار دارن میکنه چیزی که واضحه یه زره فیک کنه میفهمه اصلا نیاز نیستش به اینکه من انکار کنم دلایل و شواهد اینقدر هست که نیازی به این نیست و جزانه حال فیلم مثال اخیر و همچنین در مثال آخر فان لدل مخاطب زیرا نزد مخاطب من از دلائل از دلایل و شواهد علا جه از دلایل شواهد بر زرر جه نزد مخاطب ما اون مقداری هست که لو تعملهو نرکده ان این اگه دقت کنه دست میکشه از این کار خودش و لذال که الیه الگیه, الگیه لخبرو خالی تو به خاطر همین خبر براش آورده شده خالی از شد. حالا مثال رو نگاه کن همینه یه نبر اومده با ما بحث میکنه میگه اصلا خدا نیست من قبول ندارم خدا نیست ما نمیگه بشینیم بگیم آقا پیر به پیغمبر قسم میخورم به جان مادرم باور کن خدا هست اینطور نه خدا دیگه هست دیگه خدا هست یعنی چی؟ یعنی اگه میشین یه ذره فکر کنی ها؟ یه ذره که فکر بکنی میفهمی خدا هست. اینقدر شواهد بر وجود خدا هست که نیازی به تأکید من نیست. تو خودت بشی یک ذره به اندازه نیم دقیقه فکر کن. اگر یک دقیقه فکر کردی خواهی فهمید. دیگه نیازی به تحکید ما نیست. الله موجود. تقوله نمی که ان الله نموجود موجود یا وله ان الله نموجود داری. اینطوری تحکید نمید. الله موجود تقول و لمن کلبن یون که وجود الاله میگه اینه به کسی که منکر وحدانیت خداست نگاه کنید پایین میگه که از ظاهر روحنا یقت زد توقید ظاهر اینجا اختزای توقید میکنه لعن المخاطبه زیرا مخاطب یجهد وجود الله انکار میکنه وجود خدا را. ولیکن ولی لما کان بین یدیه الدلائل والشواهد وقتی که در مقابل او از دلائل و شواهد هست ما اون مقدار که لو تعملهو لارتدع عن الانکار اون مقدار هست که اگر او تعمل کنه دست از انکار میکشه جعل که غیر المنکر قرار داده میشه سه غیر المنکر اینو غیر المنکر حساب میکنه ولی که لماکان بین یدعیه مند دلائل و شواهد مال و تعمله هو لرته در اندل چون اینقدر دلایل و شواهد است که اگر یه ذره فکر کنه از انکار دست میکشه جوهی لکه غیر ممکن انگار اونو غیر ممکن زاده و اول غیهی لیهه خالیان مند توقی خبر براش آورده شده خالی از تک جریان علا خلاف مختزا برخلاف مختزای زاده حالا نگاه کنید بیاید توی تمرینات تمرین اول رو من براتون هر کردم یادتونه؟ گفتم خوز من اموال هم صدقتن تو تحره هم بها و تو ذکی هم وصله علیه هم وصله علیه این وصل علیه هم یعنی دست درد نکن به اینا بگوی خب این سوال ایجاد میشه که چرا دست در نکن میگه آخرجون دعا کردن تو دست در نکن گفتن تو سکنون ده هم اسباب آرام شد. سهشو نگاه کن میگه ان هم لمفسدات آه بیکاری مایه فساد ان آورده لام آورده جمله اسمیه آورده کلام انکاری به چی میگیم اینو به کسی که خودش مقاله نوشته به اینکه انکار بیکاری مایه فساد به این که آدم آتل و باطل بگرده ایجاد فساد میکنه از اینو قبول داره محیدان هست پس چرا ما با این نه چون خودش به کار نمیده تقوله لمن یعرف و ظالک ولیکن نهو یک را کسی که اینو میدونه ولی دنبال کار نمیره اینجا ما چه کار کردیم غیر منکر رو منکر حساب کردیم چرا ل ظهور امارات رنگار علی چون نشانه های انکار داشت داشت نشانه های انکار چی بوده اینکه تام به کار نمی راست راست می چهار شوهر نگاه کنید یه نفر میگه او علم سودی نداره علم چه برق این نفسی توش نیست سود توش نیست منکر نفع علم ما میگیم شما علمان علم علم سود داره دیگه اینجا منکره ما غیر منکر حساب چرا؟ چون ندعیه دلائل و شواهد نزد او دلائل و شواهدی هست لو تعمله رو که اگر دقت بکنه لرتدن انکاره که اگر بکنه از این کار خودش دست میکشه میگه تقول و زالکه لمن یون که رو چون لدعیه دلائل و شواهد نزده بود و شواهدی هست دلیل و شاهد هست بر اینکه علم سود داره که نیاز به تاکید من دیگه پنج نگاه کن قال متنبی میگه به سیف الدوله. نگه ترفق ترفق یعنی لطف کن رفاقت به خرش بده نرم باش ایها المولا علیهم آهای مولا آهای پادشاه آهای سیف دوله عزیز ترفق علیهم لطف کن به این یعنی بر این گناهکاران بر این ختاکاران میگه دست رحمت بکش سر این خطاکاران ای سیف و بزرگ سیف و دوله نسبت به اینکه که خطاکار رو اگه دست رحمت به سرش بکشی خودش بالاترین سرزنشه شهر هیچی تو ذهنش نبود در اینکه اگر شما خطاکار رو دست به سرش بکشی خودش بدترین ملامته یه نقا به شما کار بدی کرده بدی کرده شما بهش خوبی میکنید این بالاترین ملامته نسبت به این چیزی تو ذهنش نبوده ولی وقتی که این گفتش که طرف علیهم علیه لطف کن بر اینها بر این خطاکاران لطف کن تو ذهنش این پیش میاد که مگه لطف بکنیم به خطاکار چی میشه میگه جواب میده فعن رفق بل جانی اطابان. زیرا لطف به خطا کار به جانی به کار به گنهکار، اگر شما رفت نرمی کنید لطف کنید اطابان خودش بالاترین سرزنش از رفت پایین میگه زد دلانف شدت به دادن انف. ول جانی المزن یغولا میگه شعر رو معنا میکنه من معنا کرد طرف سقبه لطف کن به اینها و ان جنو. اگر چه گناه کردن خطا کردن فا این نلجانی ازا اون لف زیرا آدم گناهکار وقتی که معامله بشه با او به رفق و ملایمت دست رحمت به سر گناهکار کشیده بشه نانه و رجعه میشه بر و برمیگرده از خطا نانه و جنایته از خطاش بر میگرد. فا که انر بهی به منزلت تل شما اطاب میکنید تا اون دست بکشه از خطا. رفق به او به منزله اطابه انگار که شما اطابش یه هاشیهی داره زیر اون شعر جا شقیقون آرزن روم اونم بخونم براتون نگاه کنید میگه شقیق هو اهد و بنی امر ابن عبد قیس بن مهند شقیق یکی از بنی امر ابن عبد قیس مهند یکی از این تایف است و آرزن رمحهو آرزن رمحهو یعنی جائلن رمحهو و هو و راکبان علا یعنی قرار داده نیزه خودش رو در حالی که سوار از بوده بر روی دورانش فخزهی به حیث و به جوری که یکون و عرض و فی رمحه فیجهت جوری که عرض نیزه به طرف دشمن بوده نه نکه نیزه طولش به طرف اون نبوده اینطوری گرفته باشه آماده بری نه عرضش وزالک حالا چرا این داشته به طرف پسر اموها که دشمنش بودن و اینطور اصلهه داشتند و به خونش تشنه اینطوری میرفته طرف چرا اینطوری میرفته میگه که ادلالا به شجاعتی ادلالن یعنی به جهت نازیدن این به جهت اینکه می نازیده به شجاعت خودش وستخفافن به من یقابل و خفیف می شمرده. آدم حساب نمی اونایی اونایی که مقابلش بودن پسر اموها حتی که انهو انگار که معتقد بوده با این رفتنش گویا که معتقد بوده انهم هم لا صلاح که اینها اصله ای ندارند و در واقع بی سلاح هستند و این داره به طرف اونها میره خب من تمام مطالبی رو که باید در باب کلام خبری برای شما بیان میکردم و گفتم مثال های هم زدم توضیح هم دادم کلام خبری با همه مختزیاتش تموم شد حتی ما فرقش با کلام و جمله را گفتیم مباحثش را انجام دادیم خواهش اینه که شما برای جلسه بعد که انشالله شنبه هستش فرصت هم دارید تنشم به هم میتونید این بحث کلام خبری را جمع کنید با اون مباحث من درست رو بفهمید که بحث انشاء رو که من میخوام برای شما بخونم و بحثش گسترده هم از تو زیباتره شما تو این بحث اینشا به قول خودمون بهره کامل ببرید استفاده وافر کنید خب کلام یا خبر یا اینشا شما این دوتا رو یاد بگیرید خیلی از رموز سخن رو یاد میگیرید و خیلی از روانشناسی سخن رو یاد میگیرید مسلط میشید به اقراضی که میگید و اقراضی که میشنوید پس بنابراین عزیزان من خوب مطالعه کنید و از این فرصت استفاده کنید و مثالها رو یاد بگیرید نمونه ها رو بیاموزید و سعی کنید یاد بگیرید وقت صرف خوندنی بفهمیدش وقتی فهمیدید دیگه بلدی حالا هرچی بره جلوتر در تو ملکه میشه در تو این علم جا میفته و میتونید بهتر ازش استفاده کنید برای همین سر انشاء رو با هم خوندید از انشاء شنبه شروع می‌کنیم حواستون باشه که بحث خبر رو خوب خونده باشید هماتون رو خداوند سبحان میسر کنم ان شاء الله که در پناه خدا صحیح و سالم باشید از هر گونه بلایی هم و بناصیحت ما گوش کنید موفق و معیت باشید ان شاء الله و السلام علیکم و رحمت الله و برک